من به دنیا اومدم تا که بگم اینجا خیلی چیزا رو خیلی رک کار دیگه ای ندارم تو این دنیا زندگی هم شده خیلی جوش بغده ها تو دلم خیلی شد پس یه دل تو سینه خیلی پر نه به نتیجه و بچه ندارم که شب عید بدم عیدی شو منم مثل تو زندگی یه توهم اینفی چیزی که میشنوی کل من و چیز دیگه نیست بیره و نداری درکشو بس از هر جایی به هم حمله شد مسئله توی مخ منه فقط من بلدم راه حل بشو اینو بفهمیم بار از هم بچیم زدم باسه این کار زندگیم رو اون جوری که میخوام ولی هر بار در روح جدید تو دل تک تک حرفام اما حس میکنم که پیر شدم بعد بیست چند سال بس حرفای من این بار که مثل تیر میره تو بیدیگار سعیده کن بفهمی چیه تو فکر من اینو بفهم این بار از همه چیم زدم واسه این کار مشکلی نیست سعیده کن بفهمی چیه تو فکر من شبای چیزایی میبینم که خراب میکنه روزم روزای چیزایی میبینم که خراب میکنه روهم اینم شده کار هر روزم میگم که یه هم و این چیزا که میبینم از نداره رو حتی سر سیموزن و ولی حقیقا دقیقا چیز دیگه است منم از درشتا ریزا میگم تا هرس بخوری و باشی روی پا اه اگه باشی روی پا اگه مثل ما تو باشی روی آسفالت تو هم میبینی که هست اگه جای من باشی پامیشی میکروفون تو میگیری به دست میخونی از هرچی که نیست میخونی از هرچی که هست ولی بدون چیزایی که تو خیلی دور شبانه همه میگن تقصیر منه ولی این تقدیر منه توی صحنه نمیدونی که چی میگزه توی فکر من حرفای منه این با که مثل تیر میره تو هیچ گاز مشکلی نیست ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من اینو دینو بفهمی با لا سمچم زدم واسه این کار مشکلی نیست ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من حرفای من این با که مثل تیر میره تو هیچ گاز مشکلی سعی نه نکن بفهمی چیه تو فکر من اینو بفهمیم بار از همه زدم واسه این کار پشگدی لی ولی سعی نهکن بفهمی چیه تو فکر من.